گوینده فریده هامه از سلام و عدب احترام خدمت دوستان جان و همراهان قصه های شاهنامه فردوسی با چهارمین قسمت از داستان سیاوش در خدمت شما هستیم همراه ما باشید داستان به اونجا رسید که کیکاووز پیشنهاد صلح و آشتیه افراسیاب رو خود اونهی رنگ تشخیص داد و, و با رفتاری که با رستم داشت باعث رنجش رستم شد و رستم بناشار راه زابلستان رو در پیش گرفت از اون طرف توس رو با لشکری به سمت سیاوش فرستاد تا جای سیاوش رو در فرماندهی لشکر بگیره و نامهی رو هم که نوشته بود به سیاوش بده سیاوش هم که آدمی نبود که اهل پیمان شکنی و عهد شکنی باشه زنگه شاوران رو به عنوان سفیر به دربار افراسیاب فرستاد و صد گروگانی رو که کیکاوس قصد کشتن و جان اونها رو داشت به افراسیاب پس داد و وضعیت خودش رو براش تشریح کرد افراسیاب هم با پیران که مشاور وزیر و مرد بسیار هوشمند دربارش بود در این باره مشورت میکنه ادامه داستان رو از مشاوره پیران و افراسیاب با هم پی میگیریم همراه ما باشید روسیاب به پیران میگه که خب نظر تو چیه تو این شرایط چه کاری باید انجام بدیم چیکار کنیم بهتر باشه پیران پاسخ میده تو نگران نباش خودت میدونی که چه باید بکنی سیاوش جوون و پدر اون کاووس به زودی خواهد مرد تو باید با سیاوش سازش کنی نامهای به اون بنویس و اون رو به دربار توران دعوت کن وقتی به توران زمین اومد، ترتیبی بده که با یکی از دختران تورانی پیمان ازدواج ببنده و همسری از بین دختران توران انتخاب کنه. افراسیاب پرسید چرا باید همچین کاری بکنم؟ فایده این کار برای ما چیه؟ پیران جواب داد که برای اینکه پیمان ازدواج سیاوش رو در توران ماندگار خواهد کرد. و وقتی که پدرش از دنیا بره اون شاه ایران میشه و از اون به بعد ایران و توران برای همیشه در صلح و آشتی زندگی میکنند افراسیاب تحت تاثیر و تدبیر پیران قرار گرفت و نظر اونو پسندید از اینکه راهی پیش پای اون گذاشته بود بسیار خوشحال شد و به پیران گفت با اینکه حرفای تو درست و بجاست اما من فکر میکنم با این کار ما بچه شیری رو در دامان خودمون میپرورونیم که در آینده به شیری خشمگین تبدیل میشه و بر ما خواهد تاخت و کشور ما رو نابود خواهد کرد فراموش نکن سیاوش دست پرورده رستم و یک ایرانی نژاده پیران گفت نگران نباش سیاوش مثل کاووس دیوانه و سبک سبکمغز نیست اون راستگو و پاک دله و پیمان نمیشکنه نگران نباش همچین اتفاقی نخواهد افتاد به من اعتماد کن و کاری رو که گفتم انجام بده و بعد هم برای اینکه که افراسیاب رو به دعوت سیاوش تشویق کنه اضافه میکنه که همونطور که گفتم کاووس به زودی میمیره پس از اون سیاوش شاه ایران خواهد شد اگر تو در این شرایط از سیاوش پشتیبانی کنی و به اون پناه بدی در آینده هر دو کشور ایران و توران یک جا در چنگال تو خواهند بود. نظرات پیران افراسیاب رو قانع کرد. اونکه بسیار خوشحال شده بود از اینکه راه حلی پیدا کرده، از پیران قدردانی کرد و به را فاصله دستور داد تا منشی دربار بیاد و پاسخی برای نامه سیاوش بنویسه. در اون نامه نوشت پیام تو را زنگه شاوران به من رسوند چون شنیدم بر تو چه گذشته بسیار نگران نازرده شدم به توران بیا تو نزد ما گرامی خواهی بود تا هر زمانی که میخواهی در اینجا بمون و هرگاه که خواستی به کشورت بازگرد نام را به زنگه شاوران میده اون هم که چند روز منتظر این پاسخ بود بیدرنگ سوار بر اسب میشه و به سمت ایران و بلخ حرکت میکنه تا نامه رو به سیاوش برسونه زنگه شاوران به کاخ سیاوش میرسه و نامه رو به سیاوش تسلیم میکنه سیاوش پیام افراسیاب میخونه و گفته های زنگه شاوران رو میشنوه بسیار خوشحال شد ولی یه دلش گرفت و کمی سخت بر وجودش چیره شد چرا که ناچار بود به جای بازگشت به پایتخت ایران راهی توران بشه تورانی که هموار دشمن ایران بوده و اون باید الان به دشمن پناه ببره شرایط بسیار سختی برای سیاوش بود در این شرایط ناراحتی و اندوه نامه‌ای به پدرش می و در اون از گذشته های شیرین و ترخ یاد می‌کنه و از توتعه ها و دسیسه های سودابه هم سخن به میان میاره و علت اومدنش به میدون جنگ رو برای کابوس شرح میده و میگه که من برای جلوگیری از ننگ و خاری و فرار از دسیسه ها و نیرنگ های سودابه خودم رو درگیر چنین جنگی کردم و الان هم به این مرحله و به اینجا رسیدم نامه رو به وسیله پیکی به پایتخت میفرسته بعد از فرستادن نامه سیاوش که تصمیم گرفته بود به توران بره سرپرستی سپاه ایران رو به بهرام واگذار میکنه و خودش با سیصد نفر از یاران وفادارش به سمت سرزمین ترکان رهسپار میشه بازیهای روزگار بسیار عجیبه سیاوش به دنبال سرنوشتی نامعلوم میره از جیهون که گذشت برگشت و لحظه‌ای با حسرت به خاک میهن نگاه کرد و بعد از اون برای همیشه از ایران خداحافظی کرد ترکان وقتی که از اون بدن سیاوش آگاه میشند به طرز باشکوهی از اون استقبال میکنند. تمام شهر رو آزین میبندند و صدای تبل و سرنا در شهر تنیزنداز میشه پیران مشاور و وزیر افراسیاب در حالی که درفشی در دست داشته پیشاپیش پیش مردم به سوی سیاوش میره سیاوش با دیدن اون به سرعت به طرفش میتازه و چون به نزدیک اون میرسه از اسب پیاده میشه و همدیگر در آغوش میگیرن سیاوش میگریست و پیران از شادی و نشات خندی. پیران به چهره سیاوش چنان نگاه می کرد که انگار گمگشته ای رو بعد از سالها دوری دوباره پیدا کرده و اون می بینه. در پوست خودش نمی گنجید. نمی دونست که چرا اینطوری طوری شیفته سیاوش شده. بعد از این استقبال با شکوه سوار بر اسب می و به طرف خونه پیران میرند. یا قصر پیران. وقتی که رسیدن سیاوش سر و صورتش رو میشوره و به قول امروزی دوشی میگیره و لباس آراسته میپوشه تا در جشنی که به افتخارش برپا شده شرکت کنه سیاوش غمگین به نظر میرسه با اینکه می میکوشید ناراحتی خودش رو پنهون کنه موفق نمیشد به یاد ایران میفتاد و بی اختیار آه میکشید پیران متوجه ناراحتی اون میشه سعی بکنه موجبات شادی و نشاط سیاوش رو فراهم کنه و ذهن اون رو از ایران و این دلتنگی منحرف کنه بعد رو می کنه به سیاوش میگه تو جوونی و دلاور و خردمند و همه تو رو دوست دارن نگران نباش با اون که افراسیاب مرد خوشنامی نیست به پیمانش پایبند خواهد بود و به تو آسیب و گزندی نمی‌رسونه حرفهای پیران قدری از ناراحتی سیاوش کم میکنه و نگرانیش رو آروم میکنه انگار که سخنان این پیر فرزانه و باهوش و خردمند آبی بود بر آتش درون سیاوش سیاوش سرحال میشه و با پیران به گفت و شنود میپردازه و با هم میخندند و شبی رو به خوشی میگذرونند تا اینکه افراسیاب هم به اون مجلس وارد میشه با دیدن افراسیاب همه از جا بر برمیخیزند سیاوش جلو میره و با شاه توران احوالپرسی میکنه افراسیاب با محبت سیاوش رو در آغوش میگیره و به اون خوشامد میگه و در ادامه میگه با آمدن تو به اینجا از این پس ایران و توران برای همیشه در آسایش و خوشبختی زندگی خواهند کرد دشمنی ها فراموش میشه و آشتی جای اون رو میگیره. یک سال از ورود سیاوش به تیران میگذره. پیران که بیشتر اوقات رو همراه سیاوش بود وقتی میبینه که سیاوش بیشتر اوقات غمگینه اون رو نصیحت میکنه که با دختری ازدواج کنه. به سیاوش میگه در شبستان افراسیاب سه دختر پاکدل آرزومند ازدواج با تو زبنان دختران گرسی و هم بسیار شایسته و مناسبن با این همه گمان میکنم که دختر من جریره از دیگرون شایسته تر باشه به اندرز من گوش کن و دختر من رو بولوان همسر انتخاب کن سیاوش پاسخ میده تو مثل پدر منی کی رو که شایسته بدونی من با اون پیمان همسری و ازدواج میبندم پیران که موفق شده بود رضایت سیاوش رو برای ازدواج جلب کنه بلافاصله اونو به خونه دعوت میکنه به خونه که رسیدند پیران اونو در تالاری به نزد همسرش گلشهر میبره از شادی در پوست خودش گنجید و میخواست این کار هر هرچه زودتر تموم بشه گلشهر که متوجه هیجان شوهرش شده بود میپرسه چی شده که تو انقدر خوشحالو شادمانی پیران پاسخ میده سیاوش میخواد با دختر ما جریره ازدواج کنه پس از شنیدن این خبر گلشهر هم مانند پیران خوشحال میشه و در حالی که سر از پا نمیشناخت به نزد دخترش میره و این خبر رو به دخترش میده و ماجرای خواستگاری سیاوش از جریره رو برای دختر تعریف میکنه چهره جریره از خجالت گلگون میشه و سر به زیر میندازه و به این ترتیب دختر بزرگ پیران با سیاوش فرزند شاه ایران ازدواج میکنه بعد از اینکه سیاوش با جریره پیمان همسری میبنده هر روز بر عزت و احترام و جایگاهش نزد افراسیاب افزوده میشه پیران که متوجه علاقه شدید افراسیاب به سیاوش شده بود یه روزی بهش میگه پادشاه تو رو خیلی دوست داره. باید کاری کنی که بر خوشنودی اون افزوده بشه. هرچند که تو همسری مانند جریره داری ولی بجا و شایسته است که با فرنگیز دختر افراسیاب هم پیمان زناشویی ببندی. فرنگیز دختری خوشخوب و پاک دله. سیاوش پاسخ میده تو خودت میدونی من در اینجا کسی رو ندارم تنها یار و یاور و همدم من جریره است از میهن و کشورم دور افتادم اندوه جدایی از میهن و پدر و یارانم آزار میده اندرز تو رو میپذیرم و با فرنگیز پیمان ازدواج میبندم شاید که اندکی از این درد و رنج کاسته بشه اما سیاوش در تنهایی بسیار غمگین بوده و در فراغ دوستان و یارانش گریه میکرده. پیران به افراسیاب خبر میده که سیاوش می برای خواستگاری از فرنگیس نزد تو بیاد اولش افراسیاب اکسالعمل خواستی نشون نمیده، ولی بعدش به پیران میگه که چندان تمایلی به این ازدواج نداره اما پیران اصرار میکنه و دست بردار نیست فضایل سیاوش رو یکی یکی دوباره به روخ افراسیاب میکشه و انقدر از اون تعریف میکنه تا سرانجام افراسیاب به این وصلت رضایت میده پیران از شاه تشکر میکنه و به کاخ خودش برمیگرده و به سیاوش میگه که شاه پذیرفت و به زودی فرانگیز همسر تو خواهد شد با شنیدن خبر ازدواج سیاوش و فرنگیس مردم شهر بندی می میکنند و پیران جشن با شکوهی برپا میکنه تمام تورانیان که تصور میکردند با این ازدواج دیگر جنگی بین ایران و توران اتفاق نخواهد افتاد و صلح و آرامش حاکم میشه چندین روز به پای کوبی و جشن و نشات میپردازند افراسیاب هم هدایای گرانبهایی و فرمان فرمانروایی قسمتی از خاک توران رو به سیاوش واگذار میکنه بعد این مراسم سیاوش تصمیم میگیره که با همسرش و به همراهی پیران سفری انجام بده و از شهرهای توران دیدن کنه او میخواست در مکانی آروم و باسفا شهری بنا کنه در طی این سفر سرزمین دلخواهش رو پیدا میکنه سرزمین وسیعی که از یک طرف به دریا و از طرف دیگه به کوههای بلند و سرسبز محدود میشد و دارای آب و هوای خیلی خوب و معتدلی بود سیاوش این محل رو برای ساختن شهری که آرزو داشت مناسب میبینه و دستور میده که در اونجا شهری زیبا و مستحکم بسازند در این هنگام که مردم مشغول ساختن شهر بودند، اخترشناسان به سیاوش میگن که ساختن چنین شهری برای تو سرانجام خوبی نخواهد داشت و بدبختی به بار میاره. سیاوش از شنیدن پیشگویی اونا ناراحت میشه و به پیران میگه روزگار با من سر ناسازگاری داره و نمیخواد که من یک دم در آسایش باشم. پیران میگن دیشه بد به دلت راه نده، من همیشه یار و پشتیبان تو هم خب این قسمت هم به پایان رسید ادامه داستان سیاوش رو در برنامه بعد و برنامه‌های بعد با هم پی می گیریم امیدوارم از شنیدن این داستان که به صورت خلاصه و بسیار مختصر از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی اقتباس شده لذت برده باشید. برای همه شما عزیزان روز و روزگاری خوش و سرشار از شادی و موفقیت آرزومندم. و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای مهربان می سپارم روز روزگارتون بکن